میگه دستور داده بود سرها رو به نیزه ها بزنن و به دیوار خرابه تکیه بدن این زن و بچه ای که توی خرابه نشستن چشمشون به این سرها که میافته بیشتر عذیت بشن سر عبی عبدالله رو نمی آوردن یه نقل اینه میگن یک شب یزید دستور داد سر عبی عبدالله رو به نیزه بزنید ببرید به دیوار خرابه تکیه بدید سخت مواظب باشید نگهوان سر ابی عبدالله میگه یه وقتی دیدم پاسی از شب گذشت یه دختر خردسال پاورچین باورچین میاد کنار این دیوا یه نگاهی به سر بالای نیزه میکنه یه نگاهی به من میکنه که بیدارم میدوه میره من تصمیم گرفتم خودمو به خواب بزنم ببینم این دختر چه میکنه من چشمامو نیمه باسته به حالت خواب دیدم دختر اومد آروم آروم این نیزه رو به زحمتی خواب سرو از نیزه جدا کرد تو بغل گرف دوان دوان رفت داخل خرابه و گفت گف جان بابامو آوردم نمیگن چی شد لحظاتی نگذشت زینب سلام الله علیها اومد در خرابه گفت غصاله خبر کنید میخواییم دختر را شبانه به خاک بسپریم خدا چه رازی است زهرا را شب دعفع میکنم علی را شب دعف میکنن امام حسین بدنش تو سحرای کربلا میگذارن این دختر سه سالرم باید شب دعف کنن یه امام حسن اومدم روز دعف کنن اونم جنازهشو تیر باران کرده